شاید شام شیره سایس رد بیش دوست خدا ولی خدا هر چیزی که تو میگی سایس اما آیا ولی یا قدر داشت که تو در وقت مشکل بی پیش از زبرش باید که یا شاید شام شیره بر ما ای یک آیا از ما کردن شاید شام شیره بر تو مهربان تر بود این باید سوال بایدم جواب داده داشتام هسته دیگه. خی وقتی که تو میگی که الله رحمان رحیم است از الله کلام مادر پدرت میگه نه از مادر و پدرم الله مهربان تر است از کل پیغمبران کلام از کل پیغمبران کلام الله مهربان تر است از کل اولیاء الله کلام کل اولیاء الله کلام الله, الله مهربان است وقتی که از کل جو که مهربانتر است کی برات نزدیک است اذا سألك عبادي عني فاني قريب ما به بندی خود نزدیک هستم. از کجا از شارگ گردانم برش نزدیک هستم پس وقتی که ایزات مهربان بر تو نزدیک بود چرا به ایزات مهربان نزدیک نمی‌گی یا الله مشکل مرا رفع کن که تو میری به دربار دیگرم یعنی این سوال در روز قیامت میشیم از هر آیت قرآنی ایناله وقتی میمیم که می میگم که الحمدلله رب العالمین الحمدلله علم. علماء میگن چیزی که صفات و ها و ستایش ها که جل هست لله خاص به الله جل جلوه است، لله خاص به الله جل جلوه الله پرسانت میکنه که آیا به این عقیده داشتی؟ بله سر عقیده داشتی آیا زبانت وقتی که تو خیلی سیدن مقابلی یک کس دیگه گفتی بعضی شایرها خوستن شایرها خدا هدایت کنن میگن بعضی شایرها برای پاچا چی میگن اولادای ما اشتاد بود و شدن نوت اگر سخاوت تو نباشه من کلشتوکای ما میکشتم یک شیر عربیز برای پاچا یعنی از سخاوت تو من اولادا و نوستای خدا نگاه کردیم پس ایک کسایی که به مخلوق تو میگی الحمدو صناو صفات برای کی است؟ الله خاص به الله است خاص از خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر که معنای اینمی الحمدلله در قلب امت اسلامی مستقر شود بر ها گفت که لا که ما اطرت النصارى ابن مریم ای امت ما, ما ها توصیف نکنین مثل که نصرانی ها حضرت عیسی ابن مریم زیاد توصیف کردن کردن کردن بلاختی از مقام بندگی کشیدن به خدایی ایر انتقال دادن و مشرک شدن لا تطرونی زیات مرا توصیف نکنین خیلی چه کنیم ای پیغمبر خدا ولیکن قولو ولیکن گفت بگوین الله و رسوله بگوین که بنده الله و رسول الله از این خاطر ما بگیم اشهدو ان محمدن عبده و رسول بهترین صفت پیغمبر صلی الله علیه و الی هست که وقتی که کلمه شهادت را میخونی بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول اینا لکسانی که بعد از توصیف میکنن و پیشوریشون حمد میگویان و همه مخصوص الله نیبر از یا بسیار توصیفا میکنن و شعر نوشتن میکنن ده اینی چه میمونن رب العالمین وقتی که من مسلمان هستم و پروردگار من پروردگار عالمیان هست تمام تخلص های قومی رو باید دوست کنم یک تخلص اسلامی داشته باشه که دلالت به ای بگنه که من بنده رب العالمین هستم و نقشه قریه خود سرمیز خود نمانم نقشه کل دنیا رو بانم که باید نظام اسلام خلافت اسلامی قانون اسلامی دمی کوری زمین در کلش تدبیق شود چون تو خلیفه خدا در روی زمین هستیم نه در قره خود از این خاطر کسایی که در احزاب قومی هستند، کسایی که در احزاب قومی هستند ستمی هستن فارسی زبان ها و بعضی کسا رو ببینیم پشتون خواب و مچون فلانی و نامای عجیب غریب دارن و قوم ها خدا نسبت میتن و احزاب قومی سازن آیا یا جواب رب ندارن؟ میگه تو عقیده داشت که پروردگارت پروردگار کل دنیا هست خب تو چرا قوم خدا نزبت بدگاه برتریت دادی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه فتح شد و باید بیانیه یا اعلامیه فتح اسلامی و بلند شدن بیرق اسلام در مکه مکرمه آل این را کی اعلان بکنه این اعلامی را کی باید بتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی را اختیار کرد که بر سر بام کعبه بلال آیا آیه اونجا قرائشی ها نبودن آیا اونجا رحبره و مردمای کلان کلان وجود نداشتن ولی پیغمبر بر ما درس میده که امت ما ما رحمتا للعالمین هستم پیش ما بلال حبشی با او قرائشی کدام تفاوت ندارم اگر دوش مؤمن باشه اما اگر ای بلال مؤمن است و او جا قرائشی هاشمی مکی ابو لحب است پس او در آتش دوزخ میره و ای سیاپوسته که غیر عرب ای داخل جنت میره تا بر مردم درس بده درسته که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلام الحمدلله رب العالمین در زندگی خود تطبیق میکن پس ما تو باید تطبیق بکنیم از این خاطر اوتن که ما با نسبت دادن با گرفتن یک کارتک خرد در فلان حزب قومی یک کارتک خورد حالا ما درک می‌کنیم که این کارتاک جدی بمست این می کارتاک در روز قیامت اول قردو کامپیوتری در بسیاری پانتین ها که مردم میگم کارت خود دارم پیش کامپیوتر کن شانداری ضرور نیست که امزا بکنی برم کمپیوتر برد میگم کامپیوتر کار ده که ده کمپیوتر آخرت در رب العالمین در الحمدلله رب العالمین کسایی که کارت قوم پرستی و احزاب قومی جور میکنن و به خاطر یک قوم مبارزه میکنن و یا قوم خودا نسبت به دیگه قومها برتر فکر میکنن زبان خود به از زبان ها ترجیح میدن حرکت های نشنالیستی را ایجاد میکنن این حرکت های نشنالیستی بزرگترین مشکلش خاطر ماو تونیس خاطر ماو مشکلش نیست مشکلش خاطر رب العالمین است به خاطر که اگر من در این زبان هستم یا پشتو زبان اسیم یا هزاره هستم یا ازبک استم یا, یا, یا بلوچ استم یا عرب هستم یا عجم هستم ای خب من اختیار نکردم اختیار الهی هست اوست که من را در اینجا اختیار کرده اگر به اختیار ما میبود خدا هم برای میگفت برای اختیار که یک جای یک وطن کجا کجور اختیار میکردم؟ به افتمی ها پروردگاه را پالوی خانه که یک یک سد و پینجوان برم بتی. که قرار در سر تیار های ده سر تعمیر خود پایین شه هم با چوب شو بکنده در پایین برو مجا نماز در بیت الله الحرام بخانم و 24 سر کلگیل ما کنم که خانه کعبه را سل کنم دلم لحظه با لحظه با دیدن بیت الله شریف لذت عزور مجموعی خوبم دنیا هم موتر 5 هزار و هم ایچه. اما خداوند گفت نید شما را دینامی چه پیدا میکنم پس وقتی که خداوند من در خانه فلای نفر پیدا کرد نه از پیش ما مشوره و نه برای گفته پس هر کسی که در هر خانه پیدا شده او اختیار اختیار کی هست؟ الله هست, الله هست. و کسی که مخالفت در مسائل قومی میکنه مشکلش با امروی کی هست؟ با, هست؟ با الله مشکل داره که تو ما مشکل نداره زیاده یه جگر خوری نکنید هیچ برای ما مشکل نداره اگر یک نفر اگر اینمیال کل دنیا کل مردم افغانستان هم قام شما، ما و شما انشاءالله و تعالی بند خداوند ما را توفیق بده که به این شکل باشیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم خبرتان گفت مالک یوم الدین مالک یوم الدین در دنیا پاچه های مجازی هست که این پاچه های فلانی جایی ایتی در روز قیامت کلی از اینا از موتو که زیفتر می باشن و مسئولیتشان بیشتر است از این خاطر در دین مقدس اسلام چاوکی که انسان در دولت داشته باشه چوکی صلاحیت نیست چوکی مسئولیت است حضرت عمر میگفت که اگر یک گوسفند یا یک خاطر در کوی عراق از کو لول بخوره الله از ما فرسان میکردن که چرا رایز رو جور نکردی چرا رایز رو جور نکدی اینو چوکی عشن نبود از این خاطر کسایی که تصاحبا مشکل دارن مشکلشون است که صحابه رو مثل خود فکر میکنن فکر میکنن که والا حضرت عمر رضی الله پیش از اینکه خلیفه بود معتر نداشت، خانه نداشت، باز بعد از اینکه خلیفه شد آ باز خانی 20 منزله جور کرد و باز موترای 1 دلاری داشت در حالی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین این مبارک ها وقتی که به خلافت رسیدن از حالت قبلی که در حالتشان بدتر شد دیگه خور و خوشان گم شد عزت امر شبها خوو نداشت شب خوو نداشت وقتی مردم پرسانش میگه امر چی میکنی یک نفر میگه من رفتم عریضه داشتم عریضه داشتم میگه من رفتم گفتن برو مدینه منوره پیش عزت امر میگه رفتم پیش عزت امر برای من گفتن دینجا که در گفتم گفتن والا از قازاتمات دیگه مرد خاصی مردم کوله دیگه خاصن ما گفتم کجا برم شبا تیر مطال موطلم موطلم نیست خب بیا اینا خداوند مطال مسجدها هست مسجدها خانه غریبا هست میگرفتم قرار در ورودی مسجد واز است مسجدها رو ما از حالت زمان پیغمبر کشیدیم باز دیگه در مسجد قالیناه موروار شد دروازه مسجد قفل شد در مسجد بوریو پارتو 24 تا دروازه شواز بود میگرفتم دیگه جای نبود بود قرار در بین مسجد گفتم استراحت می نماز ما می خونم گفت رفتم که 12 به شب سعی که دمازید یک مسافر دیگه هم است. وای این مسافر دیگه کی است؟ می گرفتم نیزیگ گفتم برادر تو مسافر استی؟ دیدیم که مسروف عبادت است و عبادت میکنم سجره میکنم گریه میکنم میگه روی خدا که دور داد برش گفتم برادر تو مسافر استی؟ گفت نی من مسافر نیست چرا چی مشکل داری؟ ولی همینجه اگر ایزه داشتم آوردم آه دا دا خلیفه قرار خواب باشه دیگه در توشک سیبلسته خوب از این خاطر ما اومده میگه که چه وقت نوج از خواب خیزه 10 وج از خواب خیزه وازا میاری زاک کنه زاکنه حضرت عمر باج تو میگه عزیزی تو چی هست یعنی است باز زیش شب زاین چی دهش هم می‌ذارین گفت من رات منم قربان بالای تو بی تو خواب نداره لطف ای برادر که کجا پیدا روزی که ما این مردم ما را خلیفه‌خو تعیین کردن اونم روز حواس چشمی مگامیشه ما خواب که میتونم جواب خدا را چی بده اگر خداوند باز من رو پرسان کنه در روز قیامت که این نفر دوازده به شب عریضه داشت آمد پشتید تو قرار خوره فشقه بودی باز من جواب چی به تو بیا که برات جای جور کنم بیا که برات نان برابر کنم بیا که عریضه تا برات خلاص کنم برو پناید به خدا انهال در دین اسلام مالک یومی دین میخوان که در روز قیامت در مقابل مالک یومی دین می استاد میشون ایا که نعبدو و ایا که نستعین ایا که نعبدو چه عقیده داشتی؟ ولیسه به ایا که نعبدو و عقیده داشتو که فقط عبادت به الله میشن فقط عبادت به الله میشن ای عقیده رو داشتی؟ بله داشتو در زبان چی میگفتی؟ در زبان هم میگفتون که آن آنچه که نامش عبادت از بایدی رو با... کی بکنیم اون گفته ك... که ایا که خواست را نعبود خب از نگاه عملی کدام نظر بی بی نداشتی نه نظر عبادت است نظر به بی بی و آقا نیست حضرت محمد کدام نظر نداره که ما بگیم این نظر حضرت محمد صل الله و و صلی الله علیه و چو سلی چون نظر عبادت است و عبادت به الله کدام گسفند در زیر پای کدام کسی حلال کردی؟ نیست. چون حلال کردن حیوان فقط نام الله و با برگاه الهی می زیر قدم هیچ کس ماز پیش قبر حضرت محمد صلی اللہ علال نمی کنیم. قربانی ها این دمه نامی اما تو که دیم؟ کدام آجیر خود زیر پایش اگر گسفندک بیارک حلال نکنه باشی؟ یا زیر پای کدام آرز خود یک آن مرگ حلال نکردی نیست ما این کارا رو نمیکنیم خاطر ازی که بط پرستا زیر پای مخلوق پیش زیر پای بط گسفند یا مرگ یا شطر حلال میکردن باز پای ازو خولش هم اما ما این کارا رو نمیکنیم پس دعا دعا فقط روی خدا به طرف قبله میکردم و میگفتیم یا الله چون دعا هوا لعباد پیغمبر سم گفتن دعا چیست عبادت پس این عبادت فقط به بارگاه الله میشه که یا الله بر ما مشکل محل کو یا الله بلد. نظر فقط به الله قربانی فقط یا الله بر تو نماز فقط نماز ما نماز بر حضرت محمد سلام نداریم به هیچ پیغمبر ما نماز نداریم اگر نماز فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، نفل است، هر چی که می‌کنی فقط لله تعالی است. نماز میخوان فقط قلبت رو به طرف قبله استاد می‌شی و می‌گی که نماز فقط این صلااتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمين. کل مناسک، کل عبادات، هر چیزی که ما فقط به الله رب از ازی خاطر ایجا کردم اگر کسی عبادت کدام عبادت خدا بغیر از الله کرده بود اونجا سوال میشن که تو عقیده و عملت در مقابل ایاکن عبود و ضعیف بود بر زبانت حمدگویا در دلت پیدا سنن. در زبان خداوند استاد میشی تعهد میکنی که خدا رو عبادت میکنیم باز وقتی که بیرون رفتی باز نظرته بر غیر الله میگیری نمازتا به غیر الله عدا میکنی نه ملائکه یه حق دارن که بر شبادت شدن؟ چون میگی لا اله هنیست هیچ کس مستحق عبادت الا الله و غیر اسم الله پس هر چیزی که نامش عبادت هست او باید بر الله شود پروردگار را ما می کار کردیم خب کردیم بفرماید و ای یا کنستعین چی عقید داشتیم؟ فقط ما استعانت کمک در امور اسباب ببینید که عالم اسباب است خداوند بر ما اجازه دادن بیارک تو موتر داری مرد تاشار میبری، میگه آه دارم خلاص مرد تاشار میول کرد تا آغاز، آغاز مرد موتر خوشحال کرد میبره به و تا خانه. پسی علامه اسباب است. به دکتر میرم، دکتر سه برما دو بهت. بله میته. من خیلی سر تو تجربه داری، من تکلیف دارم. کتم همکاری کاری میکنی میگه بله هم کاری میکنم. فلانی شاید استنفی ماست، کتابشی دخو بهت دا مکومکار دارم. بله. ایناله در امور عالم اسباب ما فوق اصباب ما فوق اصباب به با میکنه واسه اینجا ایا که نستعین استعانت فقط از الله هست ام عقیده داشته باش ام زبانت استعانت از الله بخواه بگو یا الله تو مشکل کشه هستی یا الله تو حاجت رواه هستی یا الله غوث العظم تو هستی که وقت من مشکل لاشم چیخ بزنم اما یجیب المضطر اذا دعاه و يكشف الصور خداوند می چی میتونه وقتی که یک انسان در حالت غم درد مشکل قرار داره کی میتونه که اینا دعاشا اجابت بکنه الله میگه اما کی میتونه کدام ملائکه میتونه کدام پیغمبر میتونه کدام دوست خدا میتونه کدام دشمن خدا میتونه هیچ کس نمیتونه به غیر ذات جل جلال الله جل جلاله پس این مفهوم عملی سعی کنید یکی عقیدتیست و عقیده بدون عمل نمیشه که تو در عملت کار زشت بکنی پس مطابق عقیدت باید عمل داشته باشی استعانت فقط از الله بخوای و وقت استعانت از الله فقط ایا است این تطبیق میشه که در هر درد و هر مشکل خود فقط بگوییم یا الله یا الله یا الله یا الله. الله. اهدن سراط المستقیم سوال میشه و اهدن سراط المستقیم چی عقیده داشتیم صراط المستقیم کدام راه بود؟ در روز قیامت پرسان نشید. تو صراط المستقیم چه عقیده داشتی؟ که صراط المستقیم راه راست کدام راه است؟ میفتی میالهی راه مستقیم راه قرآن و سنت است. پس تو دعا می‌کردی؟ من دعا می‌کردم که اهدنا صراط المستقیم الیه تو ما راه هدایت کو براه راه راست. چه قدر وقت بر قرآن و سنت؟ هدایت وقت انسان میشه که وقتی که علاقه‌مند هدایت باشه وقتی که تو شاگرد هستی به مکتب رفتی باز مکتب تو را شهادت‌نامه میده وقتی که تو رفتی در پاهنتون ثبت نام کردی باز بود ازو در پاهنتون بر تو شهادت‌نامه میده وقتی که تو هدایت بخوای وقتی که تو درس بخوای تا کورس بری باز برای, برای اهدن صراط المستقیم چقدر وقت داده بودی احدیدن سراط المستقیم های وقتی که تو مستقیم در حرکت بودی این حرکت های دموکراسی در سراط المستقیم داخل میشد این لیبرالیسم در سراط المستقیم داخل میشد این کمونیزم مسئر با اقتصاد کمونیستی عقیده دارم مسئر بازادی با دموقراسی عقیده دارم مسئر به اقتصاد کپیتالیستی عقیده دارم ما سبب فلانی دارم آیا امیگف های تو که تو عقیده به ای داشتی با اهد نصرات المستقیم هم نواح هست یا مخالف هست یعنی انسان ای سوالها را انسان اوشیار قبل ازی که در روز قیامت سوال بر از خود سوال بکنم امید سوال میکنم آیا من از خود سوال میکنم آیا من مطابق اهد نصرات المستقیم عقیده دارم که راه راست راه قرآن است؟ وقتی که راه قرآن راه راست است پس بغیر از قرآن در راه های دیگی که من در حرکت هستم با عقیده من یک چیز است اگر نیست باید من خدا اصلاح کنم دیگر و وقتی که من میگم اهدنا صراط المستقیم خدای مرا به راه راست هدایت بکو آیا من راهی که راه هدایت است دهود و حرکت هستم ای که من جمعه ها به طرف مسجد نمیرم به هفته‌ها به طرف مسجد نمی‌رم، در رنگ رنگی دروازه مسجد که چه قسم است، در مجالس درس و تعلیم قرآن اشتراک نمی‌کنم، این اهدن نسرات المستقیمه که در نماز می‌خونم، ما دروغ می‌گم. تو رو بسیار بیرک دوست دارم، بسیار خوشید دارم، لکن خبر میشه که 40 دفعه ما اومدیم از پیش دروازه خانه تیر شدیم، یک خانه تا تک تک نکردیم، دوستی مرا قبول میکنی؟ می‌گیم نه، دروغ میگی. چطور یک نفر میگه من خدا را خوش دارم و روز پند دفه در واضح خانه خدا باز نمیکنن و کسی میتونه انا که من خدا را خوش دارم که روز پنجم مرتبه در وازه‌ی خانه خدا را باز کرده و در حلقات درس اشتراک کرده و و شهادنامه ترجمه قرآن داره شادنامه درس تفسیر قرآن داره شهادنامه یعنی حداقل در وقت روزهای جمعه خود حداقل در, در درس های قرآن و قرآن شناسی و حدیث و حدیث شناسی اشتراک کرده به خاطری که من هدایت شوم از این خاطر این مطابق اهدین الصراط المستقیم عملا حرکت کرده عزيز سؤالك خلاص لهم سرّاط الذين أنعمت عليهم سرّاط الذين أنعمت عليهم سؤال مشيم كأنا عمت عليهم أتي أكيد أنتشتي أنا عمت عليهم كي بدل ما يعبر وارد قرا خودت القرآن جوكتابه لك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قلتو وقت كميك من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین پیغمبرا راستگویا شهده و صالحین آیتو در راه از در حرکت بودی برای از حرکت میکردی ولیسا ما از گپای پیغمبر کلا گپای خروچوف و زیاد یاد دارم کتی مسلمان چی از دیکارت یک مثال گفت از اینشتاین دیگه قصه کرد از خروچوف دیگه قصه میکنن، از لینن دیگه مثال گفت از خوشحال خان یک قصه گفت، کرد یک دیگه از آدم خان دو خانه کرد آخر من در آخر پرسان کنم گفتم شما نام خدا چقدر معلومات بسیار وافر داریم ولی بله. بله چند کتاب از چی ده خانده ام. چند کتاب از لان مارک خانده ام. چند کتاب از فرانیل خانده ام. چند کتاب از این خانده نفتم از نبیین صدیقین شاهدار صالحین یک قصه ایخ از انبیان ما بگو خیر از قصه از آره یک قصه از آدم علیه سلام بگو یک قصه از موسا علیه یا قصاص عزت محمد صلی الله علیه و آله یک از... والا استاد شما اخو می که ما بسیار مصروف هستیم وقت ما بسیار زیق است و امکانات مطالعه در افغانستان زیاد نیست و کتاب هم قیمت است انال اتعقل حق نداره که ما خلاصه زندگی پیغمبران را بفهمیم چرا که خداوند مطال میگه که تو بگو که ادعایت که در راه راست راه کسانی که انعام بالایشان شده آیت دیگه قرآن میگن کسانی که بالایشان انعام شده نبیین هستن خیلی بخوار قصه انبیاره تو بیبی که زندگی با زندگی چه قدر مشابهت داره چند فیصد صدیقی نبی که زندگی تو با زندگی عزت عمر زندگی ابوبکر صدیق زندگی عثمان زندگی علی رضی الله تعالی عنهم زندگی دیگه صحابه کرام چقدر چیز داره شهدا بیبی که زندگی تو با شهده زندگی شهدا اسلام حضرت حمزه رضی الله چه قدر مشابهت داره صالحین انسان هایی که نیک هستن بیبی که بی بی تو در خود نمره بتی که چند فیصد در جمله انسان های صالح محاسبه میشی ازی خاطر عملا چی کردی آیا عملا آنچه که پیغمبر ها میکردن تو میکردی آیا خوب اهل الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم نراه کسانی که غضب خدا سر از اون نازل شد سر کی خدا نازل شد مفاسرین میگن کسایی که غضب خدا سرشون نازل شد یهودی ها بودن یهودیای بچاره چی کرده بودن که غضب خدا سرشون نازل شد یهودی ها در عقب شهوات رفتن پیغمبر باید از قوم ما باشه قدرت کلش در قوم ما باشه اگر پیغمبر از قوم ما نبود ما قبول نداریم گمراه شدن. خوب میفامید آیه قرآن میگه که یهودی ها در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میگه آن قدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیش راختن مثل که یک نفر اولادهای خوده بشناسه آیا مثلا تو دبی 20 میلیون نفر باشی پدر تو را نمیشناسه مشناسه میگه قدری اینقدر ایرانو شناخت و یهودی ها مهاجر شدن از منطقه های دیگه آمدن در مدینه منوره که فامیدن که در این منطقه در این حجاز پیر آخرین پیغمبره لكن وقتی که آخرین پیغمبرا برامد یهودیا گفتن چون از قوم ما نیست ما کافر شد ما قبولش نداریم خبر اومد که اون پیدا شد خبر داد بر کاکای پیغمبر یک یهودی در آورش استاد شد برش گفت که ای, ای پیغمبر نبرده اونجا که ای پیغمبر است و خوب مشناختن و عزت و مرا دلتالو میگم وقتی که عزت عبدالله ابن سلام که یک عالم یهودی بود مسلمان شد میگم من برش گفتم که یا عبدالله یک سوال دارم, میگم دارم. چی سوال دارم؟ من سوال دارم که آیا شما تو که عالم یهودی بودی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که پیغمبر خدا هست. گفت میفهمید که مثل بچه تو عیده گفت از بچی بمنکر زیاتر میشناختم که این پیغمبر خدا هست از این خاطر من مسلمان شدم دیگران گفت تعصب دارن میگم که قبول نمی کن. حق قبول نمیکنه پس ایناله اگر یک کس حق ابو و قبول نکنه و ابو فهمه که هدایت در قرآن و سنت است با غیر از قرآن و سنت راههای دیگه را بره به خاطر تعصب خود آیا در مخدوب علیهم داخل میشه نمیشه آیا کسی که با وجودی مسلمان از قوم پرستی می آیا کسی که مسلمان است برای یک مسلمان بگم میگم نام بچه‌ت تا عبدالله بان میگم عبدالله نام عربی است وقتی که الله جل جلاله بر ما پیغمبر عربی را خوش کرد وقتی که اختیار از الله هست قرآن به زبان عربی نازل کرده مخمنه است یک مسلمان به هر زبانی که قرآن نازل میشد ما قبولیش داشته اینجا که قوم مطرح نیست اگر پا را زدین در مغدوبی علیه هم داخل میشیم نمیشیم پس اونا میگن که یهودی ها از شهوات استفاده کردن شهوات چی هست چند چیز دست شهوات احیانا شهوات فکر است شهوات فکر است غرور تکبر خودخواهی قوم پرستی ما ما ما انانیت است این شهوات فکر است احیانا شهوت چوکی است مقدرت داشته باشم من چوکی داشته باشم باید کلگی برای من احترام بکنن یهودی‌ها اینی شهوات رو پیروی میکرد شهوت فکر شهوت چوکی که به خاطر چوکی از حق تیر می حق ها. باطل قرار میداد، باطل حق چرا که چوکی بگیره این شهوت دوم سوم مشکلی که داشتن یهودی ها شهوات مال بود که به خاطر مال به خاطر مال از حق دوری میکردم. دیگه شهوت نفس است که خواهشات نفسانی خواهشات شهوانی این خواهشات به خاطر از این خاطر کسانی که در عقب اینی چار شهوت میره در مقدوبی علیه هم داخل میشه. وقتی که در روز قیامت از ما فرصان شده که تو مقدوبی علیه هم هم میفهمیدی؟ آیا برای تشریح نشده بود؟ ولا دالین آخرین سوال که در سوری فاتحه از پیش انسان میشن سوال دیگه میگه که والا دالین و نه راه گمراهان مفسرین کرام میگن که گمراهان کی بودن میگه مسیحی ها بودن میگه یا از چرا گمراه شدن؟ سکن یهودی ها در عقب شهوات رفتن چهار قسم شحوات بودنی مسیحی ها چرا گمراه شدن؟ خاطر که در عقب شبهات رفتن شاید امی ایسا بچه خدا باشه شاید امی مریم علا عیاض بلله مادر خدا باشه شاید باید در پشت شبهات رفت شاید دعای مرا خدا قبول نکنم اما روی هستم باید برم پشت یک نفر دیگر که تو برشده ای نمیرسایب در بین خود خدا را داخل کردن در پشت شبهات رفتن شبهه کردن در رحمت خداوند شک کردن وقتی که خداوند مهربان است و ما تو را دوست دارم. چیزی را داریم که پیش ک بگه بریم کاستم میگم یا الله تو برم دو چشم دادی تو برم چیره دادی تو برم ران میتی تو برم زندگی میتی از تو ک مهربان نیست پس میریزی هم الهی تو خوب بود. اما وقتی که در رحمت خداوند شک, شک کردن شک کردن در رحمت خداوند پس به عوازی که به الله رجوع جو بکنن یک مسلسی ایجاد کردن گفتن اول بشهکشش میرییم باز کشش به خدا بگوید. اول پیش عزی میریم. پاپ بریم باز پاپ برای خدا بگه بین خود و بین خدا فاصله ایجاد کردن اینمی ایجاد فاصله از چی میشن از شبهات میشن در رحمت خداوند شک کردن در ذات خداوند شک کردن گفتن تو والا شاید خداوند بچه داشته باشه در قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کوفوان احد این شک کردن بنا اندر شک و شبهه و شبهه و این شهادت تو باشه این شاید تو باشه نه انسان مسلمان ما هیچ وقت شک و شبهه نمیکنیم حلال معلوم است حرام معلوم است صفات الله در قرآن ثابت است عبادت الله در قرآن ثابت است عقیده اسلامی در قرآن ثابت است در سنت تشریح شده است هست بنان ما عقیده خود مطابق قرآن میگیرم عقیده من مثل الحمدلله رب العالمین جور میکنم الرحمن رحیم جور میکنم کنم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اینی کلش عقیده من است و مطابق ازی عمل میکنم کنم بنان یک مسلمان در شبهات در چیزهایی که شک است در زندگی نمی از این شکوک چیزهایی که است اگر در کدام مسئله عقیده اختلافی بود کی ای گفت اینی کاراک بوکو این گفت نه نمیشد این گفت که نه خوب است این گفت فلانی است این گفت ما والا پیش شای شمشی نبرم پروا نداره یک عالم گفت که پروانه نداره یه عالم دیگه گفت نه صاحب پیش شای شمشی نبرم مستقیما به الله و که الله میگه که مستقیما مورتون نزدیک هستم همین خلاص این موضوع که دای دا اختلافی سیرووس میکنم این چیزی که قرآن میگه که دوی اختلاف نیست اگر از خدا بخوایم دای کس اختلاف نداره بس من از مسائلی که دوی شک از شبه است از او خودت دور میکنم شاید بعضی روایت ها باشه که بعضی اجازه ها بده. لیکن وقتی که شک پیدا شد پیغم باشه تا بگر دع ما یوری بکن ما لا یوری من میرم در بازار گشت میخرم میبینیم اینجا گوش میگه ایرانی، در یو اوه، گوش یو در آمریکا کس در قصاب ما تو الله و اکبر بگه و باز با اسلامی رو علال کنه و با سینگکشه بر خود بگیره و باز بر ما روی کنه. در پش ای رو شک کنه. اینقدر کدام, کدام وجود پس گوشت ما از از گوشت دیگه شک شد. شک اما هست که قاسوب خودش میگه من مسلمان هستم ما الله اکبر میگم این معلال کلی خیر است هر روزه گوش نمیخورم خورم در ماه یک مرتبه می خورم تاکید قرآن عظیم شان هم در مادیات است و هم در معنویت است که هم انسان مثلا تکین ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه اردوش است هم انسان مسلمان بخش مادیات وجود خودم راض بکنن و هم بخش معنوی وجود خدا مراد بکنن تا که بین ازی یک توازن باشه اتو نگفته که تو مثلا ازدواج نکو تو نان نخو تو غذا نخو تو موتر نداشته باش هیچ وقت قرآن و در سنت اتو نگفته بلکه قرآن و سنت در ما میگه شما خانه داشته باشین شما ازدواج بکنین شما اولاد داشته باشین لكن در پالویزی بخش های معنویت هم در نظر داشته باش. بینال اینجا ما شما اسلام از چخصی که در اسلام بین مادیت و معنویت تجزیه نیست. متوجه شدین؟ بین مادیت و معنویت تجزیه نیست بلکه اگر آن احکامی که مربوط به مادیت میشه از اسلام او رو تطبیق میکنی در حقیقت تو یک حکم خدا را تطبیق کردی پس اینجا هم مادیت گرفتی و هم معنویت هست بینال مادیت و معنویت با هم چی هستن؟ بايوسته هستن مثل دو بال پرنده اگه یکش قاتا کنی یه دیگه شم خطا میکره از این خاطر اگر من ازدواج اگر ما یا یک اگر ازدواج از میکنی در پولیزی که تو تشکیل خانواده میتی و ازدواج میکنی و مشکلات جنسیت مرفومیشن و خواهشات اولاد تو در دا پولیزی تو یک عبادت کردی پس در عین گرفتن ما مادیت معنیت ما هم کردی؟ اردوش گرفتی از این خاطر اینمی مزیت اسلام است اینمی مزیت اسلام دیز که خود تطبیق مادیت در اسلام بخش مادی اسلام این هم منجر میشه و تدبیق چی؟ بخش معنوی چون یکی بادگه جدا نیست در ادیان جدا کرده گفته اینی است اینی معنوی اینی نبیگی ایره نگی اما در اسلام خود ازدواج معنویت است بین صفات خالق و صفات مخلوق اینجا علما از نگاه اقاید اسلام میگن میگن تشابهات لفظیست نه از نگاه حقیقی مثلا وقتی که ما میگیم که نام خودت رحیم است نام یک کسی دیگه عالم است و نام الله هم عالم است و هم رحیم است اما این صرف اشتراک در چی هست؟ در لفظ است اما آیا علم یک انسان هم میتونه با علم خالق یک چون فکر بکنیم مثلا اگر من بگم ما عالم هستم الله عالم است علم من به شاگردی نیاز داره من 20 سال پیش با استاد شاگردی می کنم و امروز هم وقتی که من بر توی درس ایتم، می تونم کتابو را خوندام میرم کامپیوترم میمونم شاگردی می کنم تا که یک چهار کلمه یاد می گیرم تو میگم ای علم علم ما از روز اول بود نه خیر من جاهل بودم عالم شدم آله هم به سری مسئله جاهل هستم سبع عالم میشم اما الله جل جلاله صفات ما برش گفتن پس علم و رحمت ما و شما که هست از نگاه لفظ علما میگن یک نوع تشابه هست لفظی اما از نگاه حقیقت الله عالم حقیقی است ما عالم مجازی هستیم الله عالم غیب و شهاده است من تنها امور ظاهری رو میفهمم از قلب تو خبر ندارم الله عالم است که علم از او نهایت نداره من علم هستم درگیر شگک خواستم من نمیای اگه ببری در صرف بیولوژی مدرسه فالم کس نمیگیره دار بیولوژی بیخی جاهل هستم پس علم ما منحصر به یک رشته تخصص معقد کم ناقص ضرورت به وسایل ضرورت به استاد ضرورت به داره اما وقتی که بگیم الله عالم است ما نباید علم الله را با علم خود تشبیه بکنیم علم الله لیاقت به شان الله داره و علم ما لیاقت به شان و عاجزی و توازو و بیچارهگی ما داره که تون مگ مخلوق هستم چه چیزا رو نمیفهمم امیل من آمه تو را شاید پت پیندقبات به این آمه تو برای من معرفی کنی از این خاطر تشابه در لفظ است و از نگاه حقیقت نیست از این خاطر ای باید در نظر بگیم که صفات الله صفات کمال است که به ذاتش می زیبن. و صفات ما مخلوقات صفات آجیزی و بیچارگی است که به خود ما می و این صفات ما با صفات خداوند هجگاه نه تشبه شده میتونه و نه همگون. وقتی که ما میگیم اینجا پیغمبر سلام یک کس از پیش پرستان کرد که چی ما در زندگیم بکنم که بسیار ضروری است پیغمبر سلام قل آمن تو الله سم مستقیم اول بگو که آمن تو الله و الله ایمان دارم بعد ازو استقامت بکن بنا ما کسانی که کلمه میخوانیم میگیم که یا الهی ما خوال راه هدایت اختیار کردیم پس توفیق هدایت و استقامت در هدایت تو بر ما از این خاطر ما در پنج وقت نماز خود دعا میکنیم که الهی ما خواهد آل در راه امروز در جمعه من در درس آمده مشتراک کردم و امي سواب درس حاصل کردم الهی در تا آینده اون نشه که ماده زیر تاثیر شیطان بین برم بگم که درس چی میکنین روزگار چی میکنین برو امروز چی خب مجلس است چی خب فلانی جای فلم است چی خوب فلانی است پس من همیشه در پنج وقت نماز میگم که الهی این نماز خواندم پس برام توفیق استقامت در دین و توفیق هدایت 24 زاد نصیب مابکنی بخاطر که اگر هدایت الله نباشه ما تو نمیتویم بخوریم پس همیشه به الله رجوع میکنم که الهی برای من استقامت در دین و استقامت در اعمال نیک نصیب بکن. ان شاء الله و تعالی خداوند متعال جل جلاله جل برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که اینا مثل آیات قرآن رو در زندگی خود تطبیق بکنیم. الهی پروردگارا یا الله کسایی که سعی کنیم دین قدم کسایی که سعی دین خدمت میکنیم خدا پروردگارا تو عجر عظیم در دنیا و آخرت نصیب بشون بگردیم. پروردگارا قرآن در ملک ما حاکم بگردد. خدای پروردگارا خدمت را قرآن کامیاب بگردان. پروردگارا کسی که بدینی ما به اسلام ما و مسلمانان ما چشم خیانت، قدم خیانت می‌مانند، پروردگارا توشان کور بگردان و پایهایشان شل بگردان. خدای پروردگارا قرآن در ملک ما حاکم بگردان. در سرات سر جهان حاکم بگردان. پروردگار جوان یک انجامند. جو زحمت که ایجان قدم ماندن و به این نیت آمدن که خدا ما از قرآن خبرشیم و از دین خود خبرشیم پردیگار رو تو نصفت همیشه نیویشان بگنا پردیگار رو استاد که دی اینجا خدمت میکنه و مسلمان ها مزدر خدمت شده پردیگار رو در دنیا و آخرت هم را اشن کن بربردیار رو در دنیا و آخرت همراهششان هم کنیم بربردیار رو توش کامیاب داشته باش تو سرفراز داشته باش تمام مسلمان های جهان سرفراز داشته باش پربردیگار رو کسایی که با دین ما به اسلام ما به مسلمانای ما پروردگار و کسایی که خیانت میکنند کسایی که میخوان که اسلام ما را نابود بگردانن پروردگار ترشون نیست نابود بگردان ماحششون بگردان از سراسر روی زمینشان محو بگردان پروردگار و کسایی که کمر همت بسندن کسایی که نظر دارن که قرآن خدمت کنن قرآن در ملک ما حاکم بگردان پروردگار ترشون همکار ام باش. پروردگار تو هم کاری کاریشو نکن تو کمرش اون کن غیر از سود موادی که دربار نداریم غیر از سود دیگه ما امیدی نداریم امید ما خدای دربار توست پروردگار ما امید ما از از از, از تمام دنیا دیگه هیچ برآورده نمیشه غیر از دربار تو الهی امید ما را دربارت نا امید نگرد الهی پروردگار را کسی که دستای خدا بالا کن با دربار تو خدا دربار تا تا فان شدن خدا توش قبول بگردان و امید را غیر از دربار تو دیگر دربار نیست خدا امید ما را نامید نگردان نا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسن توه و فی الاخرة حسن